مرحوم محقق اردبیلی کربلا و نجف زیارت کرد و عطوات عالیاتو و, و عصبی داشت سوار اسبش بود داشت برمیگشت ایران. جوانی بین راه رسید بش. خب جزء مستحبات اینه که اگر کسی با شما هم سفر شد، مرکب نداره، شما همه مسیرو مسیر رو تنها سوار نشی یه مقدارم او رو سوار کنین. اگه مرکب توان داره دوتایی با هم سوار بشید توان نداره نوبتی و محقق اردبیلی اونقدر با تقواست که میگن مقدس اردبیلی ایشون جوان که اومد خیلی گو کجای میرید گو مثلا اینقدر راه رو میخوام با تو بیا به ایشون کرد که ممنونم با هم سفر میشیم ولی کراهت داره که من سوار باشم شما پیاده حالا محقق پیرمرده اون جوان نزار من پیاده میشم شما سوار شو یا با هم سوار شیم که به این عمل کرده باشیم شون سوار کرد یه کمی که راه رفتن اون جوان از محقق پرسید که فلان عالم در نجف چجور آدمیه شروع کرد تعریف کردن محقق آدم خوبیه عالمیه وار هست فلان عالم در کربلا چجوره گفت میشناسم آدم خیلی خوبیه چند تا رو پرسید در ایران در عراق فلان همه گفت محقق اردبیلی چجور آدمیه گفت دعا کنید آدمش گرفتار هوای نفسش بیچاره است خدا از او بگذره خدا او رو بپذیده هی شروع کرد از محقی قردی بد بعد گفتن یه دفعه برگش گفت امام زمانش او رو انشالله قبول کنه گفت چگونه از حال کسی که امام زمانش سوار بر مرکبش فهمید حضرت اگر افراد بتوانن بر نفس قلبه کنن هوا رو بکوبن فلانی چطوره خوبه بد نیست. فلانی چطوره خوبه بد نیست. محقق اردویش او که خیلی عالیه او که فلانه. او که نمیدونست این کیه؟ میگه خدا از او بگذره. امام زمانش او رو قبول کنه. امام زمانش راضی بشه. مثل همون قضیه ای که تو مدائم به سلمان فارسی گفتن ریش تو محترمتره یا دوم سک؟ اگه سرات بگذره ریش من اگه نگذره دوم سک.